الحمد لله وكفى وسلامنا على الله الذي نستث أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من بجر أو أمسى وهو مؤمن فلنخيناه سياقا طيلا وقال الله تبارك وتعالى من أهرط أمركي فإن له معيشة ضنكة صدق الله العظيم دوستان و سروران گرامی همه یه ها با هر نوع گرایش و هر انتخابی که در باب حقیده دارند و باورهای دینی دارند، دنبال یک چیز هستن دینی رو پیدا کنن که با اون دین بدونن دنیا و آخرت خودشون رو به سمت فلاح و بهبودی و رستگاری پیش ببرن به یک زندگی مطلوب و به یک ای زندگی ایدئال دست دارو کنن دینی که تضمین کننده ی همه سعادت خوابش هم دنیای ما رو به فلاح و رستگاری برستانه و هم آخرت ما و همینطور تلاشتایی که در باب دنیا میشه همه تلاششون بر که بتونن با این تلاش و پشتکار و جدیت به یک زندگی مطلوب و یک زندگی ایدعال دست پیدا کنه زندگی که همه راحتی ها و همه خوشی ها و همه لذت‌ها ها در او جا داشته باشه سروتمند میخواد با ثروتش به این دست پیدا کنه آقای سیاست مدار و با سیاست و قدرتش میخواد به این زندگی ایدعال و خوب دست ادا بکنه اون آقا با مداره که آلی خودش میخواد به این زندگی آرمانی دست ادا بکنه برآن هر کسی در تلاش خودش و در خوشش خودش یک چیز رو میخواد تلاش ها متفاوته و نگاه ها متفاوته به که ما چطور به خوشبختی برشم اما همه دنبال خوشبختی هستن خوشبختی اون گوهر و اون گنج سعادتیه که همه دنبال اون هستند. در تلاش و تقاقو هستند تا به اون دست پیدا بود اما واقعا این خوشبختی تو کدوم باوره تو کدوم ایدئولوژیه تو کدوم نگاه دینیه تو کدوم نگاه دنیه, کدوم نگاه دنیه؟ و تو خودون سبک زندگی هست باشی ما میتونیم به اون زندگی اید و آل و خود دست بدا بکنیم در دو آیه قرآن الله تعالی دو تا سبک زندگی متخابط رو بیان میبین تو یک آیه الله تعالی از زندگی یاد میکنه که معیشت هم زندگی تنگ و زندگی سخت و در یک دیگر دیگه الله تعالی از یک زندگی دیگر یاد میکنه حیات طیبه زندگی پاکیده زندگی لذت بخش. این دونو زندگی متقابل هست و این ما هستیم در حقیقت که با اون سبک زندگی خودمون و با اون روشی که از زندگی برای خودمون ترسیم کردیم به هر که از این دوتا زندگی دست پیدا می کنیم یا اون معیشتاً بنکار زندگی است یا این حیات تیگه این دست ما هست انتخاب این دو مسیر در دست ما هست که برای رسیدن به این دوتا زندگی هست دست ما گندم از گندم به رویت جو به جو وقتی من گندم می نمیتونم دشکینم دعا کنم بگم خدای تو قدرت داری خدای تو قدرت تو ماضوب قمه اراده اراهات من گمون کاشتم تو من جوب. یا اینکه جوبه کارم و از اون مکافات عمل و نتیجه عمل خودم بخوام فرار کنم. بعد بگم خدای حال من بر بعضی سرای جو کاشتم. اما تو قدرت مندی، تو رعوفی، تو رحیمی، قدرت تو و قدرت خاص خدای تو میتونه جویی که من کاشتم تبدیل به گمدم موکنی بلی این قدرت خداست. که تو قدرت خداوند نیست اما هر جا قرار نیست خداوند اعمال قدرت میتونه قانونی هم خدا داره و من باید این قانون خدا احترام بگیبرم همونطور که در بحث مادی و دنیوی ما هر شب کاری درو میکنی تو زندگی دنیایی خودمون هم به هر سبکی که زندگی کنیم نتیجه اون زندگی رو قطعاً در آینده ن نت... چندان دور به دلت میاد در این درن بیستم و 21 که بشر به یک قدرت‌های خدابونه دست پیدا کرده اما فکر این بشر یک فکر بسیار محدود و کوتاهه عقل و خرد این بشر عقل و خردی خرد بچگانه اما قدرت و قدرتی خدابونه شده در به چیزهایی به چیزهایی این بشر دست پیدا کرده که شاید چند دنی جلو چند چند اون طرفتر اصلا رسیدن اینها جز محالات جلو میکرد اصلا تصور مهمان هستند. اما با وجود این همه راع اقتصااق بناوری یک چیز کممه. در سر رضایت از زندگی، از هر کسی در هر سطح اجتماعی و در هر موقعیت مادی و دنیوی وقتی سوال می‌کنیم شما چطوری هست؟ چطور داری زندگی می‌کنی؟ خب می‌بینیم شکوهل میکنه شکایت میکنه خوش می‌گذره؟ نه، خوشین که نمی‌گذره. چطوری وضعیت خوبه؟ نه، هی می‌گذره. چه حبل چطوره چه زندگی چه حیاتی این یعنی شکل و شکایت که عموماً بر ها جاریه خواهد یه از عموم جامعه ما وقت میگن چرا اینطوری هست میدازن گردن یه دل ملکونی که با بیکفایتی و بیلیاغتی دارد این زندگی سخت به لحاظ مادی رو ایجاد دارند اما سؤال اینه که همون مسئولی هم که امروز بر ما گماشت شده از کجا آمده مگه غیر از اینه که اون مسئول از بسن همین جامعه بلند شده شیر مادران همین جامعه رو خورده تو مدارس همین جامعه درس کنده راه و ددیرستان و دانشتای همین جامعه رو تجربه کرده و عموما اینطوری بوده که با رعی همین جامعه نفته اون پست و مقام نشسته یا مستقیم یا بروازده ولی حقیقت اون مسئول چکیده و اثاره کل این جامعه اونو که نی آوردن به قول محروف اون سلول اون رو از یک کره دیگه آورده باشند دی این ایش ماری کهکشان دیگه باشه بعد آوردن یه مرتبه اون تو اون سمت و تو اون موقعیت اون هم برخاست از جامعه خدمات کل این جامعه بودن که زمینه فراهم کردن با بیمکولیت ها در سطور پایین با بی کفایتی ها در سطور پایین تر تا اون آقا در اون سمت و جایده هم یعنی روی هم رفته یک امارت بزرگ سوست میشه فرو سرو می اما این همیشه نتیجه در حقیقت اون معمار نیست که درست کرده آجر فرسوده آوردن تو این جا بنا به کار بردن و اون در حقیقت مسالهی که برای این به کار بردن گفتن آقایی که حالا فرسودن بود بود اون که حالا نمیدونم فران مساله اگر یه خورده ایمه نیش کمتر بود که بود همین سهلنگاری های کوچک عواطب بسیار بزرگی رو برای یک جامعه دو همیشه اون سکست های بزرگ نتیجه سهلنگاری های کوچکه یک نعلعت خوب کوبیله نشد نیخی از او کنده شد عصبی به زمین خورد سپه سالاری زمینگیر شد لشکری شکست خورد تمدونی فرو پاشه از کجا جروع شد؟ از یه نیخ نعلاعصبی که خوب توبیله نزده یک تمدون بسیار بزرگ دایگات فرو می پاشه از بیمسئولیت ها و بیکفایتی هایی که شروع میشه زنجیروار از یک جایی هی گندتر، هی بزرگتر، هی بزرگتر هی بزرگتر تا جایی میرسه که یک تمدن بزرگ از هم میپاشه بنابرای ما نمیتونیم بگیم که تنها اون کسانی که امروز در رخت جامعه ما تصمیم گیرنده هستند در بحث اقتصاد یا بحث معیشت مردم تنها اون را مسئولن. اون به جای خود مسئوله و اون فردای قیامت باید جواب بده و در مقابل تاریخ هم باید جواب بده ملتی که باعث شدن این به این جایگاه برسه این ملت هم مسئول. بنابراین صحبت من اینه که ما امروز عادت کردیم به این که اون مسئولیت کار خودمون رو به دوش دیگران بگذاریم و این دنبال مقتر بگردیم بیرون از وجود خودمون بیرون از سختیت خودمون بیرون از خوبیتیت خودمون اگر هر کسی پای اون شکست ها و پای اون زرد هایی که به صورت فردی داره بریسته بگه من خطا کردم شجاعت این داشته باشه من تا اینجا بد رفتم من تا اینجا با بیمکولیتی و بیکفایتی جلو رفتم تا اینجا من مسئولیت خودم رو به عنوان پدر در این خانواده خوب انجام ندادم. معلم آقا بگه که من مسئولیت خودم رو آقا اولین نهادی که اون مسئول تربیت می اولین نهاد خانواده است پدر و مادر بپذیرن که من درست تربیت نکردم بعد اون محیط تحصیلی اون معلم بپذیره که من درست این دانش آموز رو با اون آموزش و تربرشی که لازمی رشد این بود تربیت نکردم بعد در خط کلام بیاد به این جامعه بپذیره که من بنا اون عقراص و اهداف شخصی و فردی به حزبیه خودم انتخاب درست نکردم از پایین همه بپذیرن خطا اشو رفتر رفته این جامعه اصلاح میشه و این جامعه دنجیروار دو مرتبه به سمت اصلاح و بهبود و فلاح و رستگاری پیش اما اینکه من بسیرم دست و دست بذارم و فقط مرسی و سرایی کنم و فقط ایجویی و بدگویی کنم این فضای جامعه ما رو زیوان نمی بلکه مدید بر علت یک فرهنگ غلط ایجویی رو هم در جامعه رواج رواجیده یعنی اون جامعه یک جامعه بدخلاق میشه چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ ورزشی چه به لحاظ اجتماعی یک جامعه بدخلاق و پرتنش و خشن تمانی که امروز جامعه ما اینطوری شده تو رواندیگی‌ها دنبال این هستن که با یکی درگیر بشیم تو فوتبال دنبال این, این که با یکی درگیر بشیم تو معاملات دنبال این هستن که اون عقده‌های درونی خودمون رو سعی کنیم فرو بریزیم حالا یه جایی توان ما رسید خب این رو مستقیم پیاده می کنیم نتونستیم نیده مستقیم به طریقه بهش میشه میزنیم ورگ بمیشن و این شده که ما امروز در ایران رکورددار خشونت شدیم و هر جا سر میزنیم تو بیمارستان ها سنگه میشه درگیری تو رانندگی ها درگیری تو مراکز آموزشی و تحصیلی درگیری این درگیری های مختلف نتیجه اینه که در این جامعه هیچ کس یقی خودشو نمیگیره به هیچ کس مسئولیت قطاع خودشو رو قبول نمی‌کنه و و دوست داره بار مسئولیت خودش رو ندانن کاری خودشو به دوست دیگران دنباشه لازم در جامعه اصلاح نمیازه در جامعه اون تغییر و اون تحول بنیادی که باید ایجاد بشه اون تمدن سازی که باید به وجود بیاد اون به وجود نگست در کنار اون جامعه ای وجود جامعه فرطنش جامعه ای که فقط دنبال این هستن که خشونت خودشون سریعی که دیگه پیاده کنن به وجود میاد این که امروز زندگی های ما در یک تکیه که اون نارضایتی عمومی زیاد شده همه ما مسئولیم همه باید به فکر تغییر باشیم اما اما هر که بامش بیش برفش بیشتره اون کسی که مسئولیت کلامتری داره من به عنوان پدر مسئولیت دارم. معلم این جامعه یک مسئولیت داره. مدیر یک محوسسه و مدیر یک مجموعه یک کلام اون مسئولیت داره هرکی در صد خودش بیاد و اون مسئولیت و خودش رو بپذ میره. خاه های خودش رو قبول کنه با به فکر تغییر و تکن در خودش بشه جامعه عوض روش. ارکنم خدمت دوستان دو مدل زندگی رو الله تعالی در کلام خودش بیان میکنه. یکی حیات تغییری، زندگی فاکیزه، زندگی لذت بخش و یکی زندگی سخت. امروز تو این کار میکنیم و بیشیتیم عموماً ما زنده هستیم، اما زندگی نداری. تنها زنده بودن کافی نیست. معنی زندگی تنها نفس کشیدن و تنها در حقیقت یک عادت غریزی رو تکرار کردن معنای اون زندگی نیست یه دم و بازده میداره یه آقایی که تو کما هست خود میگن آقا چطوریه میگه نفس میکشت کس نگیر زندگی میکنه میگه نفس میکشت یه ذریعی نیشه پایینی داره یه ماهی که داخل یه لیوان آب فقط قسمت آب شوشش و اون قسمتی که برای تنفس سرش تو آب تنش بیرونه برمیگن این ماهی زنده هست این ماهی زندگی میکنه میگن نه زنده هست اما زندگی نزده ماهی که زندگی میکنه با این حالت زندگی نمیکنه که سرش تو آبه و فقط داره نفس میکشه و فقط یک چیز غریزی رو داره تکرار میکنه این زندگی نمیکنه این زندگی خیلی از ما تو این زندگی مادی و این زندگی ماشینی امروز فقط زندیم اما تام زندگی رو واقعا نچسیدیم به اون معنای واقعی و اون از کجا نشهت میگیره؟ وقتی که آمارها رو میگیریم چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای عقب مونده و جهان سوم میگیم همه نارضایتی زندگی به نوعی در اون بالا هست حالا اونا یک دفتقه ها دارن اینو یک دفتقه ها دارن اونها یه اجتماعی دارن اینها یه اجتماعی دارن اونها یک بنبست پای ذهنی و فکری دارن اینها یک بنبست پای ذهنی و فکری دارن به نوعی همه اطیر خودشونن هم. با خودشون درگیره. و برای همینه که آمار خودکشی ها حتی در کشورهای صنعتی و غیر صنعتی آمار خودکشی قوقا کرده ابسوردگی یعنی افسردگی یک تلاطم درونیه به زبان ساده یعنی یه فردی ذهنش به بومبشت رسیده فکرش اثیر شده اما جسمش باید تهرن و جبران زندگی کنه نمیدونه برای چی باید زنده باشم نمیتونه زندگی بکنه اما زنده سکه. روزی سر مرتبه کنار ثروتش کنار قدرتش کنار امکانات دفاعیش آرزوی مرگ می ظاهر زندگی این آقا رو خیلی یا نگاه می کنن زندگی این آقا رو می کنن این آقا دوچاری گیه بومبست های فکریه یک. زهن این عفیره، زهن این در گل و زنجیره این آقا به یک گمبرت هایی رسیده که نمیتونه برای این معزلات و خلق های درونی خودش جوابی داشته باشه اما بیرون اینو نگاه میکنیم حس میکنیم که این آقا همه چیز داره زنده بودن تنها کافی نیست آیا واقعا ما در کنار زنده بودن تمام زندگی سالم رو هم می کشمیم و زندگی اون لفظت می و اون کمال انسانی و اون جایگاهی که خدا با عنوان خلیفت الله در دنیا برای من تقیم کرده آیا اون جایگاه رو برای خودم تسبیل کردم واقعا حس میکنم انسانم یا فقط مثل سایر جانداره زنده تو زندگی جاندارهای دیگه حیواناتی دیگه با ما شریکم اونم زندن اما اونا زندگی نمیکنه. کنن اونا مال خودشون نیستن اونا مال یکی دیگه برای چی دیگه دارن زندگی میکنند؟ نحران دارن زندگی میکنن، جبران دارند زندگی میکنن، بدون هدف دارند زندگی میکنن، زندگیشون معنا نداره، زندگیشون یه دور تکرر زندگی حیوان تکرار مکررات زندگی حیوان خلاصه شده در شهوت شکم و شهوت فرد بدون اینکه خودش بدونه من قرار نهایتن به چی برسم؟ برای چی قرار زندگی کنم؟ چی معنای زندگی؟ چی حیات این آقا نمیدونه فقط دندر زندگی حیوانیه در قرآن دو لفظ بیان شده یکی معیسه که ابعیش مستقصره و یکی حیات به معنای زندگی معیسه یا همون در مشتقات تو قرآن خیلی کم بیان شده سه مرتبه به صورت مفرد خدا عیشت رو بیان میکنه و یک مرتبه به صورت جمع این عیشت رو الله به میبره اما وقتی بحث حیات میاد الله تعالی بحث حیات رو هفتاد و دو مرتبه در کلام خودش هیت میکنه حیات به معنای زندگی فرق این دوتا چیه؟ خب علماء علم لغت درود بر علی الله و در رابطه با معیشت و حیات نوشتند تو دو تا آیه الله تعالی یک آیه میگه من اعرض عن الذکر فان لهم معیشتاً بانقا معاشت زندگی طلف زندگی سخت توی آیه میگه منعم ال صالحین من بکرنا صالح و انطا فلنحیینا روح حیاً طیباً برای اهل ایمان و عمل صالح خدا میگه حیات برای غافل ها الله تبارک میگه چی معیشتن بیضا معیشت به چه معناست امام راغب اصفهانی که امام فن لغت هستند ایشون میفرماند کلمه ای مختص زندگی حیوانیه و در حیات جانداران استفاده میشه حیوانات عیش دارن معشب دارن حیوانات زندن این کلمه عموماً برای زندگی جانداران و برای زندگی حیوانات استفاده میشه اما حیات به چه معناه؟ حیات به اون زنده بودن ما هیچ موقع برای زنده بودن ذات الله تالا ذات حیث لغصه ایش رو به کار نمی بریم ما برای زنده بودن هی فرشتگان لغصه امایش رو به کار نمی بریم حیات اونها و زنده بودن اونها امایش نیست مجست نیست بلکه اونها حیات دارند. از اون در حقیقت لفظی جامعه و کامل برای زندگی اونها اطلاق میشه. خداوند یک دست افراد رو میگن که اینها فقط عیش دارن من اعراض هم ذکری کسی که اعراض بکنه از یاد من حالا اعراض از یاد خدا این نیست که اعراض از یاد خدا در سیاست، اعراض در یاد خدا در اقتصاد، اعراض در یاد خدا در اجتماع سالم و اجتماع قویا، اعراض از یاد خدا در عبادت، اعراض در یاد خدا در معاشرت اسلامی این اعراض در همه ابعاد ذکر الله تنها به این اطلاق نمیشه که من سبحان الله الحمدلله بگم علما میگن هر تاعتی هر عبادتی در ذکر الله داخله یک لبخند در ذکر الله داخله به شر که با ایمان و احتساب باشه تبصم و کتیبش تعقید صدقه تبصمتو تو چهره برادر مسلمان صدقه است عبادتی. تو این میاد به چهره برادر مسلمانت بخند که نبی ما این رو معادل صدقه معرفی کرده لبخند زدی اما عبادت کردی از غفلت دور بودی تو خانواده هستی با زن و بچت خوشو بش میکنی رفتار نیکو معاشری سالم داری باشن بازی میکنی با بچت بازی میکنی اما چون غافی غافل نیستی و داری امتثال امر خدا میکنی نبی من با حسنای نبی من با دو تا ریحانه خودش نبی من با سردار جوانان بهشت نبی من با حسن و حسین تو خونه بازی میکرد به این نیت با بچه بازی کن این عبارات با همسرت تو خونه خوش بش کن چیزی بگو چیزی بشن و دل او رو به دست به این نید که نبی ما فرموده خیاراکم خیاراکم لعهلی بهترین شما اون کتریه که حسن معاشره حسن سلوک با عرضای خانوادش داره به احساسات خانمش اعترام میذاره یه برسایی رو برای خانواده اقتصاد میده از ترک کشیدن تو فضای مجازی فاصله میگیره، فضای حقیقی زندگی خودش رو پر لطف می دانه. یه پیوند عاطفی قشنگ تو خونه ایجاد میکنه. حرف بچه رو حرف همسر رو حرف در حقیقت مهمان رو میشنه این حسن معاشرت و این در فکر الله داخله آقا با همسرش خوشبش کرده به این نیت که نبی ما بر این حسن معاشرت تأکید کرده نبی من با ازواج متحررات نبی من با ریحانه خودش ام المؤمنین سیدتنا عائشه صدیقه حبیبۃ نبی محبت کرده واش نشسته ساعت حرف زده به این نیت با بچه‌ش با همسرش حرف میزنه این عبادت این در ذکر الله داخله این که ما میگیم ذکر الله یا اینکه ما میگیم مدد مقابل... مقابلش غفلت معنیش این نیست که من میخوام از غفلت دور بشم 24 ساعت بعد تسبیل هستن باشه یا 24 ساعت من باید کنج مسجد باشه نه خیلی یه ساعتی رو هم برای تبتل، خلوت، یکسویی با خدا اختصاص بده، اعمال انفرادی طبقه اصلاح اهل دعوت ما اعمال انفرادی تو بکن بحثی تو این نیست اما از اون طرف ذکر اللات و معاشره ذکر اللات و معامله ذکر اللات و سیاست ذکر اللات و اجتماع اجتماع اون معنای دیگری داره با ایمان و احتساب پا تو سیاست با ایمان و احتساب پا بزار تو اون مسئولیت و شغل و کاری که به تو محبل کردن اینو یک مسئولیت بفرق. اینو این شغل این یک منبع درآمد اینو, درامت. اینو چیزی برای فقط اضافه شدن دنیای خودت ندون اینو یعنی یک رسالت بدون این یک مسئولیت نسبت به این جامعه بدون کار کن ارباب رجوی خودت رو به قول معروف دست به سر نکن. تو وقت اداری و وقت کاری از شغل و کارت از وقت اداری ندوس با تلفن همراه موقع کار مشغول نباش چون تو میخوای محل کار تلفن بزنی عرباب رجوعی که خودش از کار انداخته عرباب رجوعی که به قول معروف آمده تو مشکل اداریش رو حل کنه میگه برو یه حفظ برد بابا این پول بنزین داده تا اینجا آمده تو خیانت کردی. این آقا اینجا آمده از کار و شغلش زده تو همین ساعت مغازش و بسته شما نسبت به اون مغازه که بسته خیانت کردی. این آقا با یک اعصاب داغون از اینجا میره بیرون سر همسر و بچهش پیاده میکنه. این تبدیل به طلاق میشه توی که پشت میز نشستی و با تلفن همراه را مشغول بودی و این آقا رو با دوندگی های اداریی و کاغت ها. فاست دادی به هفته بعد و هفته بعد تو مسئولی دوزی از وقت این گسیری از مار این گسیری و از به روح و روان این ذر بزنی تو دوزی و تو در پیشای الله داره باید جواب بدی آقای معلمی که تر کلاس آمدی سی تا دانش آموز را دست تو امانت دادن تو مسئولی تو قرار از این فرزندان تنها وزیفه تو آموزش نیست وزیفه تو پرورش هم هست تو قرار از اینها تنها متخصص نه از اینها متعهد درست کنید تو قرار از اینها پدران موفق فردای این جامعه درست کنی تو قرار از اینها متخصصین و متبحرینی درست کنی که فردا سیاست این جامعه رو اقتصاد این جامعه رو همينا به عهده بگیرن و اگر تو امروز خیانت کردی فرداهای نچندان دور این یک اقتصاددان نالایت میشه که دود عدم کفایت و مسئولیت اون به چشم توی معلم اول میره تو هم مسئولی آقایی که در اصناف مختلف داری فعالیت می تو مسئولی آقایی که منبر و تیریبون دست توه آقایی که بهراب مسجد دست توه آقایی که خط مشریف جامعه رو داری تاگین می کنی تو مسئولی اگه این جامعه کج بره تو مسئولی امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی تو خیابون راه می یه بچه ای رو دید که داره بازی میکاره بشت که موازب باش زمین سره لیز نخوری زمین یه دفعه خدا از دهن اون بچه کلمی ای در آورد که باعثت امام افغانیفی کلنگور بزرگ به زندگیش بخوره و اون تقوا و تدگیون و مسئولیت تذیری او چند صد برابر بشه بچه گفت که یه دفعه ای از دهنش در خدا به ذهن این بچه داد خدا یک اسباب رشد و تعالی و ترقی بیشتر برای امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما رحمت الله تعالی فراهم کرد گفت ابو حنیفه من به یکی میخور زمین به نهایتم بلند میشم تو مواظب باش نلغزی که اگر تو خوردی زمین یک امت میخور زمین تو مواظب باش لغزش تو مال خودت تنها نیست لغزش تو مال همه است یه خلبان خطا بکنه خودش کشته نمیشه یه تروازی رو یه سرنشینایی که بهش اعتماد کردن همه رو به کشتن میله همه رو به فنا میده تو موازد باش مسئولیت سهیدید بله ما اگر میخوایم در جامعه ما تحول بیاد جامعه ما تغییر بکنه باید زیرساخت های فرهنگی زیرساخت های آموزشی امروز تو جامعه ما طوری جامعه داره رشد میکنه که فقط رشته های رو دانشجوی ما در انتخاب میکنه این در اثر سیاست گذاری غلط منه که آمدم برای نظام آموزشی چیزی رو به وجود آوردم که جامعه مجبور شده اون رشته های رو قبول بکنه که است. دندانپزشکی ماشاءالله همه کلسیوم بدن همه سوی تغذیه همه مشکل دندان دارن و بهترین شغل یعنی که برام چیو بزنم دندان رو دارم نون تو در دندونپزشکی علام اگه آقا چیزی برای خوردن نذاره دندونینه اگه آقا نون نداره من با دندونش به چی میرسم به نون میرسم شغلایی که خیلی الان دارن میزنن عمران دندانپزشکی نمیدونم شغل فلان شغل عمرانیه تحسیصاتیه اینو را داره دشت میگه آقا رشته فلسفه برو رشته جامعه شناسی برو رشته روان شناسی برو رشته که چیزهای بنیادی رو برای جامعه باید ترسیم کنن اینه شکل پور نداره جامعه خب پور نداره ای که فردا جامعه ای ما شکست میخوره نداره طور سیانهایی نداره نداره فردازهایی که بتونن در فن جامعه اشتناسی این جامعه رو به سمت خوبی ها ببرن تو فلسفه کسی رو ما نداریم تو اقتصاد اون موقع برای ده یک دو دهه بعد ما کسی رو نداریم چرا اینطوریه همونطور تو کشاورزی نگاه کنید. امروز رو تو خیلی کشورها دارن. کشاورزی خودشون رو مدیعیت میگنن در سطور بالاتر به کشاورز میگن آقا فلان چیز رو بکار ما خودمون تو رو حمایت میکنیم و خودمون از این تولید داخلی به هر نحلی شده حمایت میکنیم و با یک مبلغ خوب از تو میخریم الان نیاز جامعه ما کاشتن گندمه. الان نیاز جامعه ما کاشتن جوه توی کشاورج بخواد بکار من عذب حمایت میکنم اما اینطوری نیست یه دفعی میگه جامعه ما همه رفصان تزعفه رو یه مرتد مینی بود مین نشود بود همه رفتن سمت گل محمدی گل محمدی نشود همه رفتن سمت کراویه همه اصلا یه جامه هر جو مرجی تو بحث کشاورزی هر جو مرجی تو بحث تحصیلات هر جو مرجی آشفتگی فکری و ذهنی یه دفعه مینی شایته ایران خود رو باخت شد نه قیمت معلومه نه ماشین معلومه نکته تحویل میدن تو دقیقه اول بسته میشه همه ملت می‌خراش چجور دیگه؟ اینشانه اینه که یک جامعه واقعا از ستو پاییمتر همینطور طبقه طبقه درجه درجه داره همه چیز فرو میگیزه ما داریم چه کار میکنیم دوستان من این چیزی که قرآن بیان میکنه از معیشتن و اینها زندگی سخت این معیشت این حیات نیست و تو این معیشت جانداران و حیوانات دیگه با ما سقیمن اونم زندن به شکم زندن به اوخور نه به آخر سعادت رو فقط تو شکم میبینن و مقتضیات شکم بنده آنی که در بند آنی فقط برای شکم زندگی میکنه فلاح رتبگاهش همین که شکم استیره ولی اینکه یه کیک رو ساق بزنه ولی اینکه یه لگت بزنه ولی اینکه یکی زیر دستپاش نه کنه شکم واسیره ولی اینکه شکم به ده, ده بدره مثل گوری درست نه اما شکم آن این معیشته زندگی که تو اون زندگی شکم حدث بشه اون حیات نیست اون معیشته اینو زندان، اما از جمس زنده بودن حیوانات نه انسان و این معیشت معیشت هم زندگی تن خود سخت زندگی که توش بمبست های فکریه زندگیش که تو اون گره های کور فکریه زندگی که تو اون زندگی فکر به بمبست رسیده که آرزوی مرگ داره اما جسم بحرن و جبران باید زندگی کنه چاره غیر از این نداره این زندگی زندگی اهل جهنمه این جامعه قبل از مردن دارن تو جهنم زندگی میکنن زندگی اهل جهنم رو خوده چطور بیان میکنه؟ و یعطیه الموت من کل مکان و ما هو به و یعطیه الموت من کل مکان از هر طرف تو چنگال مرگه زندگی اهل جهنم از هر طرف اصباب مرگ براش فراهمه و ما هو بمیت اما یک چیز هست که این مرده نیست زندگی بگی زنده نیست مرده همیست. فقط تو چنگاله اسباب مرگ داره له میشه داری میش نبی که این آقا داره لح میشه اما مرده نیست زنده هست علا زالا در رابطه با زندگی اهل جهنم میگه لا یموت فيها ولا يحيا نه اونجا مرگی که اونو خلاص کنه نه زندگی که زندگی بکنه این اون معیشت اهل جهنمه که اگر انسان از یاد الله دور بشه من گفتم یاد الله بر هر کسی تو هر بعدی میتونه معنی داشته باشه جامعه‌ای که از یاد خدا فراموش کرد تو اقتصاد، از یاد خدا فراموش کرد تو سیاست، از یاد خدا فراموش کرد تو معاشرت، از یاد خدا فراموش کرد در ابعاد و شون مختلف زندگی و جامعه‌ای شد که هر کس به فکر چاپیدن یکی دیگه شد. هر یکی یکی دیگه رو برای خودش نردبان ترقی درست کنه. تو این جامعه‌ای شکار نیست، از خودگذشتگی نیست. تو این جامعه من حق خودم و فدای حق یک انسان دیگه کنم نیست. تو این جامعه من دیگران رو بخورانم و از خوردن دیگران لذت ببرم نیست. فقط بچپن. فقط پول رو پول جمع بکنم یه دین قد میخورن که از پرخوری مریضن و یه دستو تقضیه به مریضن. یه اده پیش دکترها صبح تا شب میدوند که معده سالم نداریم از پرخوریم یه دی دیگه میدوند پیش دکترها که سوء تقضیه داریم معده داریم چی نداریم؟ آه؟ نون نداریم یک نظام طبقاتی عجیب خدا اینا چطور به هم نزدیک کنیم چطور اون آقای پولدار به بهمونیم که تو کمال انسانی تو وقتی میاد آقای محتکر آقای مقصد اقتصادی آقایی که داری همه رو میچاپی و میکشی و میبیی به خدا امروز ما از موشکای امریکا خب بلی از عدم مسئولیت هایی که دای وقتا شنیده میشه میشنویم از اینا میترستیم از این ضربه ای که خود ما داریم به خودمون میزنیم و خودمون رو داریم نابود میکنیم. از اینو داریم می‌گذره اینا با ما چیکار داره می‌کنه اینو جامعه ما رو به کدوم سمت داره می‌کشونه اما در مقابل این الله تعالی یک زندگی قشنگ رو بیان میکنه چیه؟ من اعمل الصالحا من ذکرن او ان وهو مؤمن فلنقينه حیاتن طیبه حیات طیبه در اون جامعه بیاد ایمان عمل صالح در جامعه باشه مرد باشه یا زن بتونه ذکر الله رو به معنای واقعی در جامعه زنده بکنه یاد الله رو در همه شعون و عباد پیاده بکنه این دست افراد میتونن تعم حیات قیبه و تعم زندگی لذت بخش رو به معنای واقعی بچشن رایش یه چیزه برگردیم به اون تاریخ شکوه مند خودمون برگردیم به همون قرآن و سنتی که یک زمان این قرآن و سنت برای ما قدرت های بزرگی رو به ارمقان آورد همین قرآن و سنت در زمانه سیدنا فروق اعظم از جامعه اون زمان چه درست کرد؟ به گفته دکتر شریعتی اشون میگه عمره بن خطاب کسی بود که اسلام رو تبدیل به یک قدرت به امپراتوری عظیم جهانی کرد استبداد رو خودکامیگی رو از دنیا ریشکن کرد به گفته دکتر شریعتی فروغ عظم برگردیم به اون چیز برگردیم به زندگی عمره بن عبدالعزیز زمانی که جامعه به جایی رسید که افرادی بودن که زکات بدن اما مصارف زکات نبود. یه بزرگی میگه در جامعه‌ای که دیدی فقر و تکدیگری زیاد شد، بدونید که ثروتمندان و مسئولین اون جامعه دزدن. در جامعه‌ای دی دیدی تکدیگری و در جامعه‌ای دی دیدی فقر و فاقد زیاد شد، بدونید ثروتمندا و مسئولین اون جامعه چی اند؟ وگر نه اگر توجیه ثروت بشه آدلانه ثروتمند ما زکاتش رو بده چند حلق چا ما این منطقه داریم چقدر نابگان حمل و نقل بزرگی در همین منطقه ما داریم اگر همین ها زکاتشون داده بشه شما بگید تغییر فغ... واقعی میمونه در همین منطقه ای که ما موقعیت های اقتصادی بکر داریم مثل این گمروک مثل این معدن معدن سنگان از کل معدن سنگان یک ماشین های یه می مال تایوانه هب نبر اش نبر از کل این گمرک با این موقعیت اقتصادی آقا ناعملی این گمرک مال ماست آقا این فشارهای سیاسی این گمرک مال ماست آقا این دقدقه ها و فشارهایی که اینجا به وجود میاد مال ماست اما از اون طرف منافع اقتصادی مالکیه اینا توچی به چی داره میره چرا بومی های اینجا آقا برداشت تو مجلس میگه نماینده ماینده شما تایباد و طربت جام نه عدس مجلس رو میخوره نه گندم کابل رو میخوره عدس و گندم ها رو دست تو چی دادن مگر تو داری گندوم و عدس ایران رو توزی می کنی مگر تو سلطان عدس و سلطان گندومی که با این شجاحت داری عرض می زنی تو رده سیاسی تو مگه بالاتر از دکتر رینیه او هم نواینده تو هم نواینده تو با چه قدرتی داری حرف رو میزنی؟ و چه بشوانی کی به تو این جرعت رو داده که در خانه ملت داری به این داری توهیم میکنی تو نمیتونی سفیر بشی یعنی چی ما شایستگانی داریم در اهل سلت که هم میتونن سفیر بشن هم میتونن وزیر بشن اگر امثال این آقا نباشن کازه لاغذر از آش و یه فردی که هر خودش رو نمیفهمه آمده در حوزه انتخابیه یک نماینده و داره به نماینده توهین میکنه من کار ندارم این نماینده سنی یا شیعه و این نماینده آیا دکتر رحیمی یا کس دیگه توهین به یک نماینده در حوزه انتخابیه اون نماینده یعنی توهین به اون ملتی که بهش داده این آقا با چه جراتی میاد در طربت جام شروع میکنه تو این کردن و چرا کسی نیست دلوی این آقا رو بگیره تو این آشفت بازار اقتصادی به جایی که بسیدن در رابطه ما این مفاسد اقتصادی و مفاسد مختلفی که جامعه این آردارو نابود میکنه آقا میاد و منبر خودش رو با چی میخواد گرم کنه چطور میخواد خودش رو انقلابی جل ببرده انقلابی بودن یک یعنی چاک دادن نیست هنجره پاره کردن نیست انقلابی اصلی اقتصاد فلج و بیمار رو درست کن به جامعه نشون بده جامعه انقلابی که تونسته تحول بنیادی نه. اقتصادی بیاره انقلابی در اقتصاد برسکسته ما به وجود بیاره اینو نشون بده به هر حال همه ما باید برگردیم چه من به عنوان یک سرد از ملت و چون مسئول به عنوان یک فردی که الله تعالی یک جایگاهی بهش داده همه ما باید به الله برگردیم همه ما اگر میخوای معیشتا دنکای ما و زندگی سخت ما تبدیل به حیات تیبه بشه باید مسئولیت وزیر بشیم. باید برگردیم و باید اون چیزی که آموزه های درست دین ماست برداشت های درست دین ماست قرائت‌های های درست دین ماست اونا رو مش ناسیم با اونها رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین